علل سه قسم از رسائل اسلامیه تمام بر واقعه در باب عبادات مطرحه شخص وارد مثلا 15 سال شده باشه یا 15 سالش تمام کرده باشه رساله‌ای شرایطی که برای تحقق یک بلوغ شرعی هست ما نمی‌تونیم در باب معاملات مد نظر بدونیم نظام معاملات طبیعی رو وقتی میگن صحیح هست یا صحیح نیست سبیه در مقابل شخص بالغه و بالغه از نظر عرفی متقاییر با بالغه از نظر شرعیه هست مکلف یک قسم سومی داره به نام مکلف عرفی که از نظر عرفی ها شخص مکلف هست یا نیست یک مثال واضحی قبلا زدیم. به سال خیلی واضح قبلا میزدیم برای این معنا یعنی برای ما کندف که ناکبت به باب زمان یعنی آیا شخص میتونه شخص صبی میتونه زامن بشه یا نمیتونه زامن باشه آیا میتونه تجارت بکنه یا نمیتونه تجارت کنه آیا میتونه چیزی به رهن بذاره میتونه به دهن قبول کنه اشتر نفل علام در این مسئله بر اقوادی که عمده ترین گول این بود که دین معاملات فرقه یعنی شخصی شاید در یک بابی مکلف باشه در یک بابی دیگه مکلف نباشه شخصی صبی نسبت به بی از نظر التکازات عرفی اشکالی نداره این اون بلوغ لازم رو و اون تکلیف لازم رو بعد به نظر نمی بینن این نسبت به زمان و به زمان, زمان در میگن شخص اگه سبی باشه زمانتش مقبول نیست به خاطر اینکه این مسئولیت از نظر عرفی به عطی این شخص نمیاد شخص سبی نمیتونه زامن بشه مگر اینکه مکندف باشه یعنی به یک بلوغ و گشت عرفی رسیده باشه اون موقع میتونه زامن بشه ولی برای خرید فروشه امور غیرهامه و قلیله اشکالی نداره این یکی از فرقهایی بود که بین مکندف عرفی و مکندف شرعی مدد نظره منابرای مکلف در باب بادات غیر از مکندف در باب معاملاته در باب معاملات هم فرق میکنه اگر این ذهنیت ها نباشه ما در باب معاملات هم بگیم سبی اگر 15 سالش تمام نشده باشه تمام معاملاتش باطنه کما این که دهی و جماعت کسیده قائل بودن بهش بعدی اگر باشه ما مکلف رو تفسیر کنیم به یک تفسیر غرفی یعنی به مسئولیت در مختلف ابواب فرق میکنه شخصی شاید در یک بابی مسئولیت پذیر باشه در یک بابی مسئولیت پذیر نباشه سبیه نمیتونه چیزی به رحم زاله ولی میتونه بره از مغازه چیزی به نه ارتکازی عرفیش کار نداره نمیتونه سبیه بدون ولیش یا قیمش زامن کسی بشه زمانتش اعتبار نداره چون این مسئولیت رو از نظر عرفی بردوش سبیه نمیبینند پس باید مکلف باشه مکلف شدنش هم به تمام شدن 15 سالش نیست بلکه شاید از 20 سالم رد بشه الان تازه 20 سالهاش هاش هم چیزی متوجه نمیشن پس فرق از بین مکلف و عرفی با مکلف شرعی بعد نظره بایین باشه قسم چهار و که ازلطفت این در مکلف ازلطفت ایلا حکم شرعی یعنی خصوص مجتهد که مکلف فعلی به یک حکم فرعیه یعنی به استنباط احکام شخص مستعد مطلقه این مکلف به استنباط احکامه این شخص مکلف فعلی به یک حکم فعلی از تفع تفصيلا و التیفات دو قسمه طرتا التیفات اجمالیه و طرتا التیفات تفصیلیه این در مکلف از التفتح الى حکم شرعی مراد از این التفات التفات تفسیریه یعنی بعد از تحقیق و بررسی و سؤال یکی از این سه حالت دست پیدا میکنه بعد از تحقیقش شاید مکلف که خصوص مشتهید باشه یا مقلد باشه بعد از سالها بررسی به یکی از این حالت برسه یا قطع به حکم شریع پیدا میکنه یا شک داره یا زن معتبر برش رامه میکنه پس این التفات التفات تفصیلیه و التفات تفصیلی یعنی تغییر بررسی و سوال اگر شخص آمی باشه اگر مراد از التفات التفات تفصیلی باشه و مراد از التفات تفسیری تحقیق و بررسی و بحث و مباحث و اینهاشه یقینا استدراکی در این قید لازم نمیاد که بعضی ها قائلن چون بعضی‌ها میگن از التفات قید مستدرکه به خاطر که مکلف مکلف نمیشه مگر اینکه منتفد به حکم شرعی باشه پس در باطن خود مکلف التفات خاویده کسی بیاد قید التفات رو بیاره این استدراکه و قید توضیحی و قید توضیحی مغایر با قاعده اعتراضیت قیود هر قیدی اصل اولی درش اینه که اعتراضی باشه اگر قیدی اعتراضی نباشه اون قید برخلاف اصله قاعده اولی در بابه قیود اینه که اعتراضی باشه یعنی موثس باشه و مقسم باشه به دو قسم و حکم رو تخصیص بزنه به یک قسم و به زلطفت های مستدرک مستدرک نیست یکی از راحل هایی که برای حل موارد استدراک مطره حل به اجمال و تفصیل یعنی اون التفاتی که در باطن ما که لفت نظر نظره التفات اجمالیه و اون التفاتی که در قید اومده زلطفتا التفات تفسیلیه یعنی بعد از 20 سال بحث و بررسی به یکی از این سه حالت میرسه یا قاتل به حکمه یا زنه یا شکه مسئله بعدی در رابطه با اینه که معنوی گفته بودیم و محصلش الان جمع کنیم اینه که آیا حالات مکلف بعد از تحقیق و ورسی و التفاوت تفصیلی حالاتش سه است یا دو تا شیخ انصاری قائل به اینکه که حالات سه است یعنی بعضی از موارد قطع به حکم شرعی داره بعضی از موارد شک داره بعضی از موارد زن به حکمه اخوند فاضل حسینی به اینکه که نه باید دو تا باشه شخص یا قاطعه یا قاطعی نیست و زن رو تقسیم میکنه به دو قسم اگر معتبر باشه ملحقه به قطعه اگر معتبر نباشه ملحقه به شکه و این طوری خواسته بگه تقسیم سنائیه نه سلاسیه ولی گفتیم حقیقت همونه که شیخنساری میگه حالات ما کنه تاست یکی قطعه قطع یعنی علم وجدانی چون اگر علم غیر وجدانی باشه مثل علم غرفی علم 99 درصد و امثال این ها همین ها به زنه اگر مراد از قطع در این عبارت بخواد ام از قطع وجدانی و غیر وجدانی باشه تداخل در اقسام لازم میاد شخصی که میگن قطع به حکم شریفی کرده یعنی قطع وجدانی و یقینا از امارات و عدل و قوائد قط وجدانی حاصل نمیشه هزار تا روایت هم یک عملی قایم میشه ما قطعه وجدانی پیدا نمی کنیم عادتا مگر در بعضی از موارد با اینم این هم خودش تحقق پیدا نمیکنه کنه یک بطلبی هزار تا با قطعه روایت قائم میشه یقینه اگه دو تا روایت سعی باشه چهار تا روایت سعی معارضش میشه و ما قطعه به وجدانم پیدا نمی کنیم. پس یکی از حالات واقعی همون زن به حکمه هر چیزی از غیر طریق علم وجدانی باشه از نظر اصطلاح حصول بهش میگن چه بیانه باشه چه قسامه باشه چه عدل باشه چه قول امام معصوم باشه چه خبر متواطر باشه همه اینها خارج از علم وجدانیه ما علم وجدانی به اینها نداریم علم وجدانی در مواردی انسان خودش ببینه خودش بپرسه خودش واقع رو بدونه و الا قالب موارد علم غیر وجدانی از طریق عدل و امارات و قوائده بنابراین زنه و نمیشه نیم کاره باشه باشه ما مکلفه به واقعی نیستیم که ما مکلف به ظاهریم علم وجدانی هم چاید خطا داشته باشه وجدان انسان خطا میکنه دیگه ما معتقد به چیزی میشیم که برخلاف واقع مثلا کاری به خطا نداریم در علم فقر ما مکلافی به واقعی که نیستیم ما مکلافی به ظاهریم هر چیزی ادله اختزار کنم و قسم ثوم شکه که اینم قواعد خودش رو داره هم قواعد فقر هم قواعد اصول و چه اصول عملی و چه اصول غیر عملی تمام این در موارد شک نوع رسائل در رابطه با همین حالت شک مطلب بعدی که گفته بودیم باز نیاز به جمع کردن داره اینه که مجاری اصول مجاری اصول رو حس عقلی در چهار تا کردن یعنی منحصر کردن در چهار تا به حس عقلی گفتن یا حالت سابقه داره یا نداره اگه داشته باشه یقینا مجرای استصابه و سایر اصول و اگر نداشته باشه خودش تو حالت داره یا شک در تکلیفه یا شک در مکلف و بهه شک در تکلیف باشه نوعا مجرای براعته اگر شک در مکلف و بهه باشه احتیاط ممکنه احتیاط کنه احتیاط ممکن نیست مخیلی اینطوری گفتن یعنی مجاری اصول رو اون مورد جریان اصول رو میگن منحصر در چهار تا به حس عقلی یعنی شما پنجیومی براش پیدا نمی چون هر موردی ما شک داشته باشیم یا حالت سابقه داره یا حالت سابقه نداره یعنی قسم ثومی براش تا سوار نمیشه ولی وقت این قسم دوم خودش باز تقسیم میشه به دو قسم یعنی در مواردی که حالت سابقه نداره یا شک در تکلیف یا در مکلفون به قسم سومی برش تصور نمیشه اینطوری گفتن بجاری اصول و در مواردی که شک در به باشه یا احتياط ممکن هست یا احتياط ممکن نیست، باز شک اتصالث نداره اینطوری گفتن هست عقلیه یعنی دائم مدار به نفی و اثباته ولی خود اصول که در این چهار مورد و در چهار مجرد جاری میشه منحصره در چهار تاست به حصر استقرایی یعنی ما از اول تا آخر فقه در شبهات حکمیه اون اصولی که کسی رو و عمدتن جاری میشه همین چهار تاست شما در موارد لحاظ حالت سابقه اصلی که نوع در تمام ابواب فقهی در شباهت حکمی جاری میشه استصحابه یا در مواردی که شک بخواد در تکلیف باشه براعته در مواردی که احتیاط ممکن باشه در شک در مکلم به احتیاط در موارد شک در تکلیف برایت در مواردی که احتیاط ممکن نیست و شک در مکلم به تأخیر اینها هستش استقای ما بین این اینها اصلی پیدا نکردیم و اینها دلیل بر این میشه که هستش استقراییه یعنی شخصی میتونه در موارد لحاظ حالت سابقه قیل از استصابی دیگه پیدا کنه و جاری کنه یا اونهایی که اصلا منکر استصابن اصاسا یا منکر جریان استساب در شباهات حکمیه یک کلیه هستن یا منکر جریان استصاب در موارد شکل در مقتضی هستند به یک اصلی قیل اصل استصاب بشتم اصول پس خود اصول حسش استقراییه ولی مجاریشون میگه هست عقلیه ما همیشه در هر موردی که شک بکنیم یا حالت سابقه داره یا نداره شقه سالسی نداره در مواردی هم که حالت سابقه نداره شک یا در تکلیف یا در مکلف و به باز شقه سالس نداره در مواردی که شک در مکلف به باشه این در مقام امتصال باشه یا احتیاط ممکنه هست یا احتیاط ممکن نیست باز شکثالث نداره. به خاطر همین گفتن مجاری منحصر در چهار تااس به حس عقلی ولی جاریاتش یعنی اصول که در این مجاری جاری میشن، منحصر در چهار تا اصول عملیه ارربه شرعیه به حس استرای بله؟ عقلیهش احتياط مثلا تأخیر اقسامی داره که عقلیه یعنی اون معلبه از ماهوا ما شرعیشو داریم میگیم چه احتیاط شرعیشو داریم میگیم تأخیر شرعیشو داره میگیم اصول عملی شرعی داره میگیم و الاگه بخواد عقلی باشه اون مقامش قبل از اصول شرعی است اصول عقلیه مقامش مقدم بر اصول شرعی است و اینها بله خب چی بگیم؟ نه چی بگیم آقای؟ چی بگیم؟ چی بگیم؟ حالت سابقه داره آخه؟ خب حالت سابقه داشته باشه؟ نه وقتی حالت سابقه داره اجرا به احتیاط داره در من که حالت سابقه داره مثلا چی بگیم نمیشه حالا فارم این چیتا اون اونا که جاری میشن داریم میگی ما مورد رو داریم میگیم ببین یا حالت سابقه داری یا نداریم شقه ثالث نداره هر حکمی داره شک بکنه یا حالت سابقه داره یا نداره دیگه شک سالس نداره خب اصول یا مجاری خود مجاری دارم میگم همینطور دیگه یا حالت سابقه داره یا نداره در مواردی حالت سابقه نداره یا شک در تکلیف یا در مکلفون به باز حالت سالس نداره در مواردی هم که شک در مکلف و به باشه یا احتیاط ممکن هست یا نیست حالت سالسی نداره هستش عقلیه منطقه اصولی که در جاری میشه متفاوته حالا نوعا در موارد لحاظ حالت سابقه قاید به جریان استصاب میشن خیلی میگن نه استصاب نیست غیر استصاب هم داره. یعنی خدشه در اون اصولی که در این مجاری جاری میشن اونم احتمال داره که در تکلیف باشه یا در مکندفون به باشه احتمالش هست ایشتر میشه بلد. نه حالا این شعبه غیر از شبه شماست شون میگه حالت سابقه رو باز میشه بگیم در تکلیف یا در مکندفون خیلی هم میگفتن نه بیشتر حس رو میشکنه یعنی اگه بخواد اینطور باشه حس رو میشکنه عقلی نمیشه اگه براد اینطور باشه اولی نمیشه مگر اینکه کسی منحصرش کنه نه عقلی بودنش که عقلی میشه منحصر در چارتا نمیشه منحصر در چارتا نمیشه هر تقسیم اگه دایم دار نفی اثبات باشه اثر شرعی دیگه هر هستی اگه دایم دار نفی اثبات باشه مگر اینکه کسی نفی اثبات رو بشکنه تقسیم اگر کسی بتونه اضافه کنه یعنی در موارد حالت سابقه بیاد بگه شک در مکلفون به با موارد شک در تکلیف فرق داره اگر کسی این حرفو بتونه بزنه و چون مشکور میگن این حالت لغوه نداریم اضافه میگن نه. در موارد در حالت سابقه میشه دو قسم نمیشه تصوره ما میتونیم تصور کنیم دو قسم بشه استقراب هستش عقلی میشه و ما میخوایم حرف هر مشهور میگن و که میگه هستش عقلیه اون اثبات کنیم. محقق لایینی هم قائله میگه هست در مجاری عقلیه، در جاریاتش هستش استقراییه. خیلی مهم نیست، مهم, نیت. مهم نیت که در فروات فقهی به چی مبتلا میشیم. در فروات فقهی میشین هر رو بزنیم یعنی در موادی که لحاظ حالت سابقه بشه، همیشه بگیم استصحاب، اگه اونطور باشه، کدوم استصحاب؟ های متعارض رو چطور حلش میکنن؟ مهم اینه که این بحث اینطوری در حیطه فقهی قابل اجتا نیست حالا میخواد حسی شغلی باشی میخواد اقلاعی باشه. مبحث بعدی که عمده ترین بحث حساب میشه و خیلی مهمه در رابطه با قطع در مواحث قط چیزی که مطرحه در کتاب های وصولی و در رسائل بحث از حجیت آیا قطع. آیا قط حجیت داره یا نداره به این معنی که ملاک حجیت قد چیه؟ به خاطر اینکه ما نمیتونیم شبه کنیم در اصل حجیت قد به خاطر اینکه غیر قابل این کاره ولی ملاک حجیت قد رو میخوایم بشناسیم مئیارش چیه؟ آیا قد مئیار در حجیتش ذاتشه؟ یا مئیار در حجیت قد اون حالت انکشافشه؟ اون خصوصیت انکشافشه و مصنف بین حجیت و طریقیت و همثال اینها تصامحاً تعابیر رو به هم دیگه اطلاق کرده یعنی گفته حجیت قدر، طریقیت قدر، همه اینها ذاتیه و همه اینها رو به هم دیگه اطلاق کرده و تصامح داره بعداً میگه از نظر منطقی به نمی‌شود نمیشه بگیم قط حجیت منطقی نداره چرا؟ به خاطر این حجیت منطقی یعنی سبب علم سبب قطع همون معنای حجیت منطقی هر چیزی در منطق سبب قطع باشه بهش میگن حجیت حجت جهتی منطقی یعنی چیزی که سبب قطع چیزی که سبب قطع غیر از خود قطع بنابراین قط نمیتونه سبب قطع باشه اتحاد سبب با مسبب پیش میاد ما بیان بگیم حجت جهتی تفصیلش اینه که القطع سبب المل قطع چون حجت از نظر منطقی یعنی از سبب و للقت و کسی بیاد بگیه القط و حجتون تفسیرش اینه که القط و سبب و للقت و این درست نیست از نظر منطقی لذا اومده گفته اطلاق و حجت بر از نظر منطقی حساموه درست نیست و تجوزه مجازم بهش میگن حجت و این ناشی میشه از شبههی که به اشکالی که بر مصنف وارده و اون این که ایشون خلط کرده به این حجت منطقی با حجت اصولی قط شاید حجت منطقی نباشه به این معنای که میگنی حد وسط در عقیصه یعنی سبب قطع نباشه ولی حجت اصولی هست اون چیزی که مرد به نظره اینه که قطر باید حجت اصولی باشه به خلاف زنون و امارات و سایر عدله که اونا سبب قطر و چون سبب قطعه اطلاق حجت بر اونها اشکالی نداره لذا به صورت عمده سه اشکال بر اطلاق حجت بر قطع. لازم میاد سه اشکال اومده اشکال اولش همینه که قط نمیتونه مجد باشه اولین محضورش اینه که یلزم اتحاد سبب با مسبب به خاطر اینکه مجد منطقی یعنی از سبب و للقت و اگر قط به حجت باشه یعنی القط و سبب و للقت و این اتحاد سبب با مسببه محظور دوم کذب کبراست کذب کبرا لازم میاد و محضور سوم یلزم تأثیر متأخر به ماه و متأخر در متقدم به ماه و متقدم و این برخلاف قانون تأثیر و علیت نسبت به محضور اولی توضیح دادیم که اتحاد سبب و مسبب به چه است. اما محضور دوم توضیحش مبتنی بر یک مقدمه و اون مقدمه مقدمه کلامیه حساب میشه و اون تقسیم علمای اسلام به دو فرقه مخطعه و مسوبه که امامیه مخطعه حساب میشن و عامه نوعا مسوبه حساب میشن یعنی امامیه قائل به تخته هست آنها قائل به تصویب هست. و تصویب رو در دوره قبل گفتیم که سه قسم برخلاف مشهور که دو قسم میدونن قسم اولش تصویب یعنی از بدترین نوع تصویب تصویب اشعریه یا دیگه توضیح نمیدیم آقاییم به کتاب های کلامی مراجعه کنن یا به جزبه های قبل مراجعه کنید شاید پیدا بشه تصویب اشعری دوم تصویب معتذلی که رقیقتره و سوم تصویب امامیه یعنی همون مصلحت سلوکیه شیخ مصلحت سلوکیه شیخ همون تصریب امامیه صدق میشه یعنی ایشون از مذهب تفقیه امامیه عدول کرده قائل شده به مصلحت سلوکیه و اون ما قبلا اسمش گذاشتیم تصریب امامیه بس سلوکیه شیخ انساری. حالا مخت قائلن به این قاعده که این الاحکام از شرعیه احکام الاحکام از شرعیه مترتبتون علا موضوعات هل احکام مترتب بر موضوعات واقعیه خودش بدون دخالت علم و قطع و زن در فعلیت احکام علم و جهر در اون احکام نداره احکام چهر شده برای موضوعات واقعی خودش علم و جهر در اون نداره لذا اون احکام واقعی مجعوله بعضی از موارد ما بهش میرسیم بعضی از موارد نمیرسیم لازه این به تخته هستند. یعنی بعضی از موارد اماره ما به خطا میره اماره خطا میکنه چیز غیر واقعی رو میگه و حکم شرکه واقعا هلیت بوده اماره با حرمت میکنه و بالعکس این میگم مخطعه یعنی تختعه عدله زاهریه اینا احتمال خطا در اینها هست و کسی نمیتونه بگینا به خطا نمیره و یک قاعده ای رو از آمه گرفتن و بهش قاید شدمون این که للمصیبه اجران وللمخته اجران واحد این اگر مجته به واقع رسید به واقع فتوه داد دو تا اجر داره و اگر به خطا, خطا فتوه داد یک اجر داره للمصیبه اجران وللمخته اجران واحد این قاعده قاعده همسنخ قواعده آمه است که متاسفانه امامی ازشون گرفتن و در مذهب تخته بهش قاعدن این مقدمه ای کلامی که امامیه نوعا قایل به تخته هستن بنابر تخته یعنی چیزی که مترتع بر این مقدمه میشه چون ما گفتیم محضور دوم کذب در کبراست کذب در کبرا یعنی چی؟ کذب در کبرا اینه که احکام برا ذات موضوعات جر شده نه برای موضوعات معلومه یعنی کل و خمره نه کل معلوم الخمریت حرام احکام برای ذات جعل شده نه برای ذات معلوم و چون احکام برای ذات خمر وز شده الخمر خمر حرام ما اگر بیایم در کبرا بگیم کل معلوم الخمریت حرام این کبرا کاذبه زن نم همینطوره زن نم همینطوره یعنی این اشکال در زن نمیاد مراد از کذب کبرا معلوم شد کبرا کاذب میشه به خاطر اینکه بنا بر مکتب تخته ما نباید این حرف رو بزنیم ولی گفتن اون موضوعی میشه موضوعی میشه دیگه موضوعی اشکال نداره اون قطع موضوعی میشه در قطع موضوعی همین نمیگن دیگه یعنی اگه قطع پیدا کردی اگه قطع پیدا نکنه نمیخواد موضوعی میشه حتی موضوعی در طریقه نمیشه که در طریقه نمیشه در طریقه, نمیشه در طریقه میگیم برای واقع متلطبه نه میگی آزا مفتول خب اون موضوعی میشه دیگه اون موضوعی میشه اگر بیان در لسان در این به خمریتش شاین فهرام اون میشه موضوعی دیگه موضوعی میشه میمونه محضور سوم تأثیر متاخد بر متقدم که اونو میگیم مطلب بعدی اینه که قد سه تا خصوصیت داره اینو قبلا هم گفته بودیم برخلاف مشهوره آقا روش تعمل کنن یعنی در حیطه بحث قدسیت قد یک بحثی مطبعه و اون که حجیت قد آیا ذاتیه یا ذاتی نیست اتفق مشهور و همه بر این که حجیت قد ذاتیه کمان که خود مصنفن میگه گرنهو به نفسی تریقونه دلواقع ولی ایست تریقیتو قابلتن در جهل اشاره اثباتن و نفیه ذاتی گرفته یعنی حجیت رو که همون اسمش براشه تریقیت اومده گفته ذاتیه ما رو از قط نمیتونیم بگیم از قط پیدا کرده به چیزی بگیم این قط شما چیت ندار مشهور قائلا هم به این که قط ذاتیه دیر قابل انفکاکه به خاطر اینکه ذاتی دو تا قانون در اشجاریه یکی اینکه از ذاتی لا یو علل. از ذاتی کسی هم نداره بپرسه چرا اینطوریه. ذاتی قابل تعلیل نیست علتی ماورای علت ذاتش نداره ذات روز اینه که روشن باشه کسی نمیتونه بگه چرا روزه و چرا روشنه از چرا نداره سوال نداره به خاطر اینکه از ذاتی لا یو علل اولا ثانیا از ذاتی لا یتخلف و لا یختلف ذاتی نه جایگزین داره و نه قابل فقدانه نه از بین میره تو هم جایدوزین داره منابراین ما اگر از قد حجیتش رو بگیریم یعنی ذاتی شعی از شعی سلب کردیم و ثبوت ذاتی برا ذات ضروریه به حکم عقل نظری و نمیشه در اینها تصرف کرد و این قواهد رو چیدن و ثابت کردن برای اینکه حجیت قدر ذاتیه و کسی نمیتونه اشکال بگیره به خاطر این که اینا رو مبتنی کردن بر دو تا قاعده مهم فلسفی از ذاتیلا یا علم دومی که از ذاتیلا یتخط لف ولا یختلف وقتی اونارو رو میگن ما نمیتونیم چیزی بگیم منتها در دوره سابق گفتیم که حجیت قدر ذاتی نیست و این قواعد هم که گفتن نه هم غالطه است نه برهان به خاطر اینکه که قد سه تا خصوصیت داره و خیلی مهمه که این خصوصیت رو آقایون تحقیقا بهش برسن خصوصیت اولی که هر قطعی داره کاشفیتش از مقتوعه هر قطعی کاشفیت داره از مقتوعش غیر قابل این کار دوم دومی هم. بله نه اون اسم رو نگیر ما اسما تساموه یعنی اسمش نه میذاریم. اونا تساموه یعنی علت افول فنون و قوه استنباد در حوزه ها خلط اصطلاحات یعنی رو بیاییم بگیم ترقیت بعد بیام بگیم تاشفیت بعد بیام بگیم محققیت بعد بیاییم بگیم چیز دیگه خلطش بگیم تدامه رو نمیشه کسی رسائل مکاسف میخونه برای اشتهات میخونه اگه کسا... کسی برای پاس کردن واحد ها میخواد بخونه کتاب دیگر میشه بخونه میتونستن کل سال رو نیاد آخر سال بیاد همه امضا بگیره و همین که با جزوه های که کسی لاهمساله ها از اونا بخونه و نمره بگیره که نمره میگیرن ولی مهم اینه که رسائل رو برای اشتحاد میخونن و ما گفتیم بعد از رسائل آقاین فکر کفایی نباشن لی سقرا و را اوبادانی یعنی بعد از رسائل اصولی نیست کفایه معمماگویه عمرها تلف میشه تا معمماهای کفایی را محلش کنه حالا در رسائل چیزی که واقعیت داره و فنیه اینه که براقت سه تا خاصیت ثابته غیر قابل انکار یکی کاشفیت دوم محرکیتشه و سوم حجیتشه علما هر سه رو یک چیز میدونن یعنی گفتن حجیت همون محرکیت همون کاشفیت اسم هم همدیگر رو به بقیه میذارن و اطلاق میکنن بر حجیت، کاشفیت رو، محرکیت رو، بر محرکیت کاشفیت میگن، بر کاشفیت حجیت میگن، به طریقیت و میگن. اشکالی نداره. اینجا دیگه عین اصطلاحات این جنگل میمونه. یعنی بر یک خصوصیتی، یه اسم دیگه بهش میگن. موقع این اسم وقتی اینطور اطلاق بشه، ولی اینها رو شما در شیمی، در جبر، در ریاضی، در مثلثات اینا نمی‌بینید. ما بیان بر یک چیزی اصطلاح دیگه بذاریم. ابداً این کارا رو نمی کنن ولی ما اینا رو خلق می‌کنیم و این خلقه باعث میشه که راه گم میشه. بعد سه تا خصوصیت داره: کاشفیت، محرکیت و موتیت. بله. حالا این سه تا خصوصیت که اولی که کاشفیت اون ذاتیه. همون ذاتیه با برهان ذاتی که دارن میگن در فلسفه کاشفیت هر قطعی از مقتوعش ذاتی چون قطع متعلق داره یقینه کسی قطع پیدا میکنه به چیزی قطع پیدا میکنه دیگه اون مقتوع به کشف عقلی میشه برابر کاشفیتش ذاتیه محرکیتش ذاتی نیست محرکیت قطع اختزائیه. یعنی بعضی از موارد محرکه هست بعضی از موارد محرک نیست اختزایی نیاز به مختزی داره مثلا قطع قطا تا محرکیت نداره قطع انسان و اساس محرکیت نداره قطع ما به خیلی از چیزا محرکیت نداره ما هممون قطع به مرگ داریم ولی هیچ محرکیتی برای ما نداره قطعه به که عمرها تلف میشه و عمر انسان وقتی بره دیگه بر نمیگرده همه قط دارن ولی محرکیت نداره باز همونطور میخوریم و میخوابیم و, و عمرمون تلف میکنیم پس در خیلی از موارد قط هست محرکیت نداره وقتی قط باشه محرکیت نباشه این کشفه که محرکیت ذاتیش نیست اختزائیه. بعضی از موارد قد محرکه بعضی از موارد قد محرک نیست سوم حجیت و حجیت نه ذاتیه نه بلکه در یک مرتبه نازلتریه، یعنی اعتباریه اعتباری محض اعتباری که باشه یعنی اغلا به قد رو بخشیدن ذاتیش نیست و اختزایی هم نیست اعتباری محضه پس در سه رتبه است کاشفیت در رتبه اوله محرکیت در رتبه دومه و حجیت در رتبه سومه. حالا میخوایم از این نتیجه بگیریم که آیا میتونه حجیت ذاتی باشه به این طوری که مشهور دارم میگن یا نمیشه ما الان یکی از مقدماتش رو اثبات کردیم که اعتباریه وقتی اعتباری باشه سمراتی برش مترتب میشه که در برقه های آتی هم مفیده حالا این تعمل کنن تا فردا شده مشهور میگن دو هم آره بله در وچیت بعد بعد يعني كان دي بقى انا عايز حاجه بسيليه ومحاسبيه تمام يعني عايز اراجع التاجيل اللي شغال في ميركوري ده يعني تحسب لي كم تكلفه وكم تكلفه الدراسيه نفسها فيها